سپاس که تا این لحظه با ما همراه بودید نگاهی میاندازیم به آخرین اخبار دانمارک در هفته که گذشت بازیگر زن درگه ایرانی دانمارکی شبکه جم با بهمن مفید و مرتزا عقیدی در سریال زمین ناهموار بازی می کند ملیسا مهربان متولد سپتمبر 1984 در دانمارک فارا تحصیل رشته هنرهای نمایشی از دانشگاه کوپنهاک دانمارک است پدرش ایرانی و مادرش است. او جایزه جشنواره امی از کشور آمریکا برای بازی در سریال محافظ را دارد علاوه بر امی او از جشنواره آلمان و موسکو نیز جوایزی دریافت کرده انتشار عکسهای او در کنار عوامل ایرانی شبکه جم و اشاره وی به بازی در فیلم مگنولیا و سندت و سریال سالهای عاشقی خبر پیوست وی به شبکه جم را رسانه ای کرده است سه ماه زندان برای راننده تاکسی سوئدی که چهار مهاجر افغان را از کپنهاگ به سوئد رساند. پلیس روز یکشنبه اعلام کرد سال گذشته پلیس یک راننده تاکسی را به اتهام قاچاق انسان که در شهر مالمو کرده است. این راننده تاکسی به جرم تدارک و انتقال چهار پناهجوی افغان از کپنهاگ به سوئد به سه ماه زندان محکوم شد. مجازات چنین جرائمی میتواند مادی باشد و در حالات خاص است تا سقف 6 سال زندان به همراه داشته باشد. مدات های جالبی که گیاه و سبزیجات می‌شوند برای اولین بار در جهان در دانمارک عرضه می‌شوند. محققان با هدف کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از دور انداختن مدات های کوچک و استفاده شده در بخش انتهایی مداد دانه‌هایی تعیه کردند که با کاشت مداد درون خاک گیاه و سبزیجات از درون آن رشد پیدا می‌کنند. این مداد از چوب صرف ساخته شده و از گرافیک و خاک رس به جای سرب در آن استفاده شده است. کپسول دانه های گیاهی در بخش انتهایی مداد تعبیه شده و زمانی که مداد کوچک و غیر قابل استفاده می شود درون خاک کاشته می شود و با آبیاری منظم گیاه یا سبزی در آن رشد می کند. یک رنگین کمان دایمی در دانمارک مردم شهر آوس در دان باید از داشتن یک رنگی کهمان دائمی در شهر خود بسیار خوشحال باشند ساخت این سازه بر بالای موزه این شهر به مردم شانس دیدن پانورامای 360 درجه از شهر خود را داده است. عبور از داخل راهروی مدور و دیدن مناظر شهر از پشت دیوارهای شیشه‌ای آن برای شما لذت زیادی خواهد داشت. در روزهای آفتابی چراغهای مخصوص تبیه شده بدن شما را تبدیل به یک تشدید کننده ی نور می کند و شما انرژی و قدرت رنگ های مختلف را می توانید دوباره کشف کنید. شما متوجه میشید که رنگ ها چه تاثیر زیادی بر روی برداشت شما از واقعیت خواهد داشت. هرکس که دوستار دیدن منظره پانارم بسیار جالب و جذاب است و می خواهد به دنیا از یک دریچه دیگر نگاه کند باید حتما به این مکان مراجعه کرده و آن را، از نزدیک لمس کند محره کمر ولیت دانماک تیه سانهی شکست روز پنجشنبه ولیت دانماک در یک سالن ژیمناستیک همکام پریدن از یک ارتفاع آسیب دید و کمر او دچار شکستگی شد دکتران میگویند باید او دوازده ماه بستری شود خبری در مورد آشورا بعد از انجام مراسم ازاداری حسینلی در کپنهاگ که هزارا مسلمان در آن شرکت کردند مارتین هندریکسن یکی از اعضای حزب زده خارجی دانگکسفورک پارتی خواهن تصویر قوانین سخت در برای خارجی شده است. و حتما در هفتهای گذشته این خبر هست چندی پیش عدی هیچ کاره و سر خود در مرز دانمارک آلمان جمع شده بودند، و جلوی مردم را می گرفتند و مدارک آنها را چک می و در صورت نیاز آنها را دستگیر می کردن. طبق خبر جدید از طرف وزیر دادگستری این کار غیر قانونی بوده و جرم آنها از جرمی نقدی تا دو سال زندان می باشن. و همچنین دستگیری شخصی از طرف شخص عادی که سمت هیچ سمتی ندارد نیز جرم می باشن. زیرا که این عمل سبب سلب آزادی فردی افراد است یک سیاست مدار دانماکی در پارلمان اروپا متهم به اختلاص شد. نماینده حزب ضد خارجی فور پارتی 200 هزار یورو اختلاص کرده است. مقامات بازرسی پارلمان اروپا، نماینده حزب ست خارجی پارتی را در این پارلمان متهم به استفاده است و اختلاص 200 هزار یورو به نفع حزب خود کرده است. آقای مسا اشمید متهم است که مبلغ دیویس هزار یورو که اتحاد اروپا در اختیار وی قرار داده بود تا صرف, صرف حمایت از این اتحادی و تبلیغ برای آن کند را صرف برگزاری نشستهای تابستانی حزب دنکس فول پارتی کرده است رومانیایی لاتین زبان ها و لحستانی ها خلافکار از همان. آخرین برسی های مرکز تحقیقات پلیس ملی دانمارک نشان میدهد که با وجود کاهش میزان جرم و جنایت در این کشور طی سالهای 2009 تا 2015، آمار مربوط به ارتکاب جرم خارجی ها در دانمارک دو برابر شده است. براساس اعلام مقامات پلیس ملی دانمارک به روزنامه‌های به روزنامه بلنسکی چاپ طی یک سال گذشته میلادی بیش از 12566 مجرم در دانمارکی توسط پلیس شناسایی ها دستگیر شدند با این همه به گفته رئیس پلیس ملی دانمارک بیشتر مجرمین که در دانمارک مرتکب خلاف می میشوند شهروندان اروپایی هستند و نه آسیایی توارخواب و مسلمانان آقای های برایت در این گفتگو با اشاره به نابرابری گسترده در کشورهای اروپایی میگوید تا زمانی که اروپا را حلی برای برقراری عدالت و رفاه اجتماعی در همه کشورهای این قاره پیدا نکند ما همچنان شاهد ورود مجرمانی خواهیم بود که کشور خود را برای انجام خلاف و به دست آوردن پول از راه‌های غیرقانونی خواهیم بود بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقات پلیس ملی دانمارک بیشترین تخلفات و جرم جنایت در دانمارک توسط مجرمینی از کشورهای رومانی لاتین زبانها و لهستان بوده است بیشتر مجرم جرم خارجی ها در حوزه اجتماعی نظیر دزدی و سرقت و وهای اطلاعاتی نظیر جعل اسناد و حک کردن حسابهای شخصی بانکی رخ میدهند به گفته آقای های بیارد یکی از بزرگترین مشکلات دانمارک در حال حاضر عدم همکاری و تمایل یوروپل با پلیس این کشور است سال گذشته مردم دانمارک در یک رفراندوم سراسری موضوع پیوستن این کشور به قوانین حقوقی و قضایی تا اروپا را رد کردند این امر باعث کاهش شدید همکاری یوروپل با پلیس ملی دانمارک شده است شست درصد دانشجویان ممتاز دانمارک را ترک کردند. رفتار دولت قاصموسن با گرینکارتیها شلیک به خود است رئیس اتحادیه گرینکارت دانمارک معتقد است رفتار دولت دانمارک با متخصصان خارجی ساکن این کشور حکم شلیک گلوله به پای خود را دارد و در نهایت این مردم دانمارک هستند که زیان ناشی از این رفتارهای سخیرانه دولت دانمارک را پرداخت خواهند کرد محمد فیس رئیس این اتحادیه با اشاره به آمارهای اخ... اخیر سی ای او فدراسیون صنایع دانمارک میگوید بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی این فدراسیوم اقتصادی دانمارکی، طی سالهای 2010 تا 2014 بیش از 34 میلیارد کرون رشد داشته و 24 میلیارد کرون از این رقم ناشی از افزایش بکارگیری نیروهای متخصص خارجی در بازار کار دانمارک است. به گفته او همچنین بررسیهای موسسه تحقیقاتی دی ای, ای نشان می دهد که دانشجویان بین المللی که با معدل بالای تحصیلی برای تحصیل به دانمارک مهاجرت کردند، بین سالهای 1996 تا 2008 بیش از 165 میلیون کرون به اقتصاد دانمارک پول و درآمد تذریخ کردند. با این همه تنها چهل درصد از دانشجویان ممتازی که در دانشگاه‌های دانمارک فارغ تحصیل شدهاند در این کشور باقی ماندن و 60 درصد از دانشجویان ممتاز این کشور را ترک کردند. رفتار دولت دانمارک در حالی با دانشجویان ممتاز و متخصصان خارجی در این کشور به دور از بین المللی است که بر اساس بررسی‌ها انجام شده توسط اقتصاددانان دانمارکی متخصصان خارجی تنها بین سالهای 2013 تا 2015، بیش از 25872 دو شغل جدید در بازار کار این کشور به وجود آورده است. یکی از اساتید مدرسه بازرگانی کوبنایک در گزارش مفصل خاطرنشان کرده که هر متخصص خارجی که از تحصیلات عالی برخوردار است، دستکم بیش از یک میلیون و هزار کرون به جیم مالیات دانمارک ریخته است. این استاد دانشگاه هم معتقد است که دانمارک متاسفانه قدشناس متخصصان خارجی نیست و این موضوع به زیان مردم این کشور در آینده نزدیک است. براساس اساس شاخص‌های شورای جهانی انرژی در سال 2016 کشور دانمارک از کشورهای پیشرو در پایداری و سیستم‌های انرژی ملی بوده است. بر اساس آمار دانمارک از جایگاه اول در زمینه انرژی، امنیت انرژی ششم در پایداری محیطی، دهم ده در توضیح یکسان انرژی و در مجموع از مقام اول در میان 125 کشور برخوردار بوده است. دانمارک، دولت دانمارک اعلام کرد که یک بسته 50 میلیون دلاری برای صبات بخشیدن به عراق و سوریه اختصاص داده است. این اقدام می در بازگشت تعدادی از پناهجویان سوری و عراقی به کشور خود کمک کند. خبر بدی به دنبال تحقیقات گسترده مشخص شده است تعداد چهل نفر از کارمندان بخش عمومی دانمای متعلق به شرکت آتی ارائه دهنده خدمات ساختار اطلاعاتی و همیرانی سیستمی به شهرداری ها یه محلی در منطقه نوردیک رشوه دریافت کردند این افراد از کار خود معلق و در انتظار برگزاری جلسه دادگاه هستند. بازداشت عامل شایع بمبگذاری در قسکیده دانمارک سخنگوی پلیس دانمارک از دستگیری یک نفر از عاملان شایعه بمبگذاری در فرود در دو فرودگاه محلی دانشگاه و دو مرکز خرید در شهر قسکیده در کپنهاگ خبر داد روزنامه اکسترابلدا رابلدا در همین راستا از قر پلیس دانمارک نوشت تعدادی پیام تهدید به بونگذاری تنها ظرف مدت کتایی در تمامی کشور منتشر و دریافت شده است. پلیس خوفیت فرد بازداشته را اعلام نکرده است. و آخرین خبر خبری دردناک از یک پناهجوی کرد ایرانی. مرگ خاموش یک پناهجوی کرد ایرانی در دانمارک. روست دوشنبه یک پناهجوی کرد ایرانی احالی از احالی روستای حریر از توابی شهرستان دالاهو یک کرمانشا، در کمب پناهندگی هننس هولم واقع در شماره قلب یولنددانمایک جان خود را از دست داد. مقامات کم با تایید این خبر گفتند که پناهجوی ایرانی سی و یک ساله بر اثر ایس قلبی جان داده است. تیم اوژانس جسد وی را به بیمارستان منتقل کرده و بررسی ها در مورد علت مرگ او آغاز شده است. بعد از مرگ این جوان شاید زیادی در شبکه‌های های اجتماعی برافتاد ولی هنوز دلیل مرگ این پناهجو مشخص نیست و در صورت اعلام توسط مقامات دانمارکی حتما از طریق رادیو اطلاع رسانی میکنیم شاد و تندرست باشید